بسم الله الرحمن الرحیم بناومن خداوند باشند یه مهربان فاد والو آن ذبک بل الذين كفوا في عزة و شقاق فاد صبحان بخار آنی که مسلما نذکر بلی کافران گرثال کرود و اختلاف هموند کم اهلتنا من قبلهم من قوم فنادو ولا تحین منار چه بثیار اقوامی را که پیش از آنها حلاف کردین و به هنگام نزول عصاب فریاد میستد ولی وقت نچاک و بود. و عجب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب انه تعجب كدن که چرا پیامبر امداکننده ای است میان آنها بخواست و کافران گفتند این ساحر دروغی اجالا الاله سئ لا او او بجای این همه خدایان خدای باقیه قرار داده؟ این گفته چیز عجیبی؟ آن ملأ منهم این ها سرکردگان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید با خدایانتان را محکم بچستید. که میخواهند ما را به سوی بدبختی بکشانند. ما سعی نمی‌کنیم در این ملت آخرت، این هدایت را خود ما هرگز چیزی از فدران خود نشانی دهیم، ایل فقط یک دروغه. آنزل عليه الذکر من بيننا بل هم فی شکم من ذکری بل لما یزوک و عذاب میان همه ما قرآن تنها بر او نازل شده آنها در حقیقت در اصل وحش من تردید بلکه آنها هنوز عذاب را نچشیده اند امعندهم خزا رحمت ربك العزيز مگر خضاین رحمت پروردگار قادر و بخشنده اثنست آنها ام لهم ملک السماوات والأرض وما بینهما فلی ارتقو فی الاسباب یا این که مالک و حاکمیت آثمان ها و زمین و آنچه در میان این دور از آن آنها اگر کنی ناست به آنها برابند جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب آره این حال لشکر کوچک شکاست خودهی از احزاباند كذبت قرنهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد قبل دنها قوم نوح وعاد بسرعون صاحب امارات كوف فيكر فينبرون امارات كذيب كاردان وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب و قوم ثمود، بدو و اصحاب الايكه اینها اهدابی بودند که با تکذیب پیامبران برخاستند. كل هر یک دین روحا رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنها تحقق یافت. قم اینها ها انتظار جزئی نمی کشند یک سیحه آفمانیت رو داو که در آن بازگشت کاشت نیست وقالوا ربنا عجل لنا قصطنا قبل یوم الحساب انها گفتند پروردگارا نصیب را از عذابت ها چی زودتر قبل از روز حساب و ماده افبر على ما يقولون عبدنا داود ذا الاید اینهو اول در برابر آنچه میگویند شکیبا باشد و به بیاور بنده ما داوود صاحب دست او واقعا باقعا سخت و بود الذ غجیبلنا سب بخ ندلله وال ما کو هارا متخر او ساختیم که هر شامگاه و صافگاه با او تصبیح می گفت ت له پرندگان دست جمعی مسخر او کردین دا او و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند و به حکومت او را استحکام بخشیدیم هم دانش به او دادیم و هم داوری عادلانه وَأَلَمْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَطْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ قَصَانُا بِغَادَبْنَا عَلَى بَعْضٍ تَحْقُّمُ بَيْنَنَا آیا داستان شاكیان هنگامی که از مهراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است هنگامی که به هیچ مقدمه بر او وارد شدند و او از مشاهدۀ آنها ها کرد گفتند نکرد دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ت کرد اکنون. در میان ما به حدداوری كن و ستم روا و ما را بر راه راست هدایت ان هذا خ <تصفح> له تعوتسعون نعجة ول نعجت واحده وَلِيَ واحده وَاحِدَتُمْ فَقَالَ اَتْفِلْنِيهَا وَعَذَّنِي في الْقِطَابِ مسلمان این برادر من است نوود و و من یکی بیش ندارم، اما او اصرار می کند که این یکی را هم به من باکستاد و از نظر سخن بر من قلبه کداد قال لقد ظلمك بتؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لينذي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه ربه عن وأناب. داود گفت مسدما او با در خوافیت تو برای افزودن آن به میشهایش هایش بسطه ستم کرده و بسیاری از دوستان به ستم می کنند مگر آنها که ایمان آورده اند و عمل صالح دارند اما ادهی آنان کم داوود گمان کرد ما اورا او را آتموز این از پرباعت طلب طرف نمود و به سیده اتاد و تلبه کرد ما این عمل را به او بخشی و او بی گمان ما دارای مقام بادار يا داود! اينا جعلت خليفة في الأرض فحقو بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله. إن الذين سبيل الله لهم عذاب شديد بما الحساب ای داود ما خلیفه در زمین پراسا در میان مردم به حق داوری کن بس هبای ناف پیروی من و ما که سرا از راک خدا منحرف می ساتد کسانی که از که خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن رود حساب دارند وَمَا قَلَقُنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ما آف من بتمین با انچرا در میان آنخاز بی خود نیو فریدین وای برکافران از آقش توفه ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفجدین فی الارض ام نجعل آیا کسانی را که آورده اند و عمل صالح انجام داده همچون در زمین قرار دهیم؟ یا فرهیز گارن را همچون فاوچران کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیتبرو آیاته و لیتذکر الالباب این کتابی پر برکت که بر نازل کرده این تا در اوژیات آن تدبر کنند و ساتبان اندیشه متذکر شبان. و عرمان داود سلیمان نعم العبد انه اوواب ما سلیمان را به دابوت بخشیدیم که بنده خوبی چرا که هم به سوی خدا بازگشت میکرد از ارزا علیه بالعزیی صافنات الجیاد صافنات الجیاد به خاطر دیو هنگامی را که افس باهان اسبان چابک تمزاوزا بر او ارساد افتادند. و قال اني احببت حب الغير عن ذكر و ذي حتى تواض الحجاب دو من انسان را به خاطر تصبرم دو سال تا اسی دکانش تنهم شدند. وغدو عليه فاق في قامت عند السوق والاعناق دور دیگر انهارا باذ کرتاونی بتا بس خاو بکر تنخوا الناس على قسيه جسدا ثم أنا. ما صلیمان را از و و با او جسدی افکان سپس او به که خدا باند انا بکر قال رب اغفر لي و لا ينزغی لأحد من بعضی انکا انت الوهاب به حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاباره هیچ کس نباشد که بیگمان تو بسیار بخشنده بخشندهی با بعد را مسخر او تا مطابق فرمانش به حرکت کند و به هر جا او می خواهد درابد و شیاطین کل بنای و غوات به شیاطین دا مسخر او ساختین هر بنا به غواتی از انخواد و آخرین مقرونین پی الاسفاد و گروش دیگری را در غل و زنجیر قرار دادید. دا و به او, او گفتیم این عطای ما به هر کس ببخش و به هر کس می, هر کس می کن و حسابی بطنید. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مآبٍ بَطَرَوْا أُنسَ مَا مَقَامِ أَرْجْمَنَ بَحْرِ جَابِنِيكَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ ضُرًّا عذاب. یا کن بنده ما ایوب را چون پروردگارش را ندا کرد به اینکه شیطان مرا به رنج و عذاب اکنده او قبط دیره هر و شراب با او گفتیم پای خود را زمین بکوب این چشمه آب سردی برای شست شو برنوشیدنه و غربنا له، اهلهو و مثلهم معهم رحمت من و ذکران اولی الالباب به را با او بخشیدیم و با همانند به را با آنها قرار دادیم تا رحمتی از سوی ما باشد و با تذکری برای ساکبان فیر وخذ بغا فارب به ولا تحن ناصاام ابد و به او گفتیم بسته اساقههای گندم یا مانند آن را برتیر و به او بزن و سوگند خود را مشکند ما او را شكیبای چه بنده خوبی که بسیار بازگشکننده به بس سوی خدا بود وانتم عبادنا ابراهيم و اسحاق و يعقوب اول الايدي والابصار با خاصه بیاورد بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را صاحبان درک های نیرومند و چشم های بینا این ذکر و انهم ما آنها را با خلوت بچی خالص کردیم و آن یاد آفریه سراغ آخرت و آنها نستما از بردزید کن با وَالْقُوْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسْعَ وَهَلْكِفِ وَقُلُّونَ مِنَ الْأَخْيَامِ بخاطر بیا اسماعیل و یستع را که همه از نیکان دیدن هادا ذکر و لحسن مآب این یک و پیگمان برای پرهیزگاران باستشت نیکو گیر جنات علمی لهم الانواب باقهای بهشت که در خاویش بروی آنان گشوده است این فیها یدعون فیها و شراب در حالی که در آن برتخت ها سکجه سردند و انباع نیوه ها به نوشیدنی های در اختیار آنان و عندهم نست آنان هم سرانی که تنها چشم به شوهرانشان دوبتند و همه زی هم و آدمات ما الحساب این است که برای روز حساب با شما و فعات اعتمیش شود این هاذا لرزونا مالمو من این بوزی ما که هرگز فاجعه نمیکرد. هذا؟ و این لطاغین لشر و این فاداش و فرهیزکاران است و برای توفیانکران بدترین با محل باز کشتند جهنم یصلونها فجئش المحاد دو که در آن بارت می شوند و چه دستر بدی هذا فاليزوق حمين و حمیم و غصاق که باوجاتشند باشند. و آخر من شکلی از اینها که است باوجی تیکری هم شکل هذا فوج مقتحن معكم لا مرحب بهم، انهم فارونا. بنها گفته می شود، این فوجی که همراهی شما بارده دوزخ تخم می شانید. خوشامد بر آنها مباد همگی و آتش خوّهان تو. قالوب ال انتم قدمتموه لنا فبیشت القرار آنها به روح خود میگوین بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید چه بد قرارگاه اینجا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزله عذابا سفت می میگویند پر هر این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذاب مضاعف در آتش بر او بی آنها میگویند گویند مردانی را که ما از اشرار میشمردیم نمی بینیناتخوا نهسی زاتول ا آیا ما آنها را به سخی گرفتیم یا چشم آنها را نمیدیم این نه این یک واقعیت است گفت گو هاج خسمام دو دخیانی. قُلْ إِنَّمَا أَنَ مُنْذِرْ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْغَفْحَارِ بِقُوا مَنْ فَقَدْ يَكْ إِنْزَارُ كُنِنْ دَأَمْ وَهِيكْ مَعْبُودِي جُسْخُ دَعْضَنْدِي يَكَانِي قَفْحَارِ نِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفْحَارِ سر باز قهر اسمان ها و زمین و آن کی میان اندوز پر بار کا ویاضی و غفار قل هو لبا ام عظم خبر بزرگ است انتم عنهم اورون کہ شما از آن روی کردان هستید ما کان لی من علمی اعلا از من از ملع اعنا به هنگامی که مخواستم هم می کردن خبر ندارم یا انما انا تنها چیزی که به من بخیه می شود این است که من انتا کننده آش کاری هستم از موکیل ربک که کهینی خای ب من خاطر هنگامی را که پروردگارت به ملیک گفت من بشری را راستگ می آریمبع س او و و نهنگ هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خودم در آن دمیدم برای او سجده کنید در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند ابلی جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود قال یا تو ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی اس تكبرت أم کنت من العالیم گفت ای ابلی چه چیز مانی تو از سجده کردن بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم کردید آیا تکبر کردی یا از بکترین بودی قال انا قیم منه خلقتنی من نار و خلقته من صین گافت من از او بهترم مرا از آتش آفریدی و او را از گید قال تخرج منها فإنك رجیم فرمود از آسمان ها خاید شو که تو رانده یه درگاه منی وَإِنَّ عَلَيْكَ نَعْمَتٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَمَثَلَّمًا لَعْنَتِ مَنْ بَرْتُو تا روز قیامت خواهد بود قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ عرض کرد پر بارکارین مرا تا روزی که انسانها پرنگی اختمی شوند قال فإنك من المغري، فرمود، فاز مهول الداو دشودا كون. إلى يوم الوقت المعلوم، بل يتروو باهتمام معكين. قال فبعزتك لا أبوي أنهم أجمعين، قف، وعزت تسكن، جميع أن خورا. گمراه خانكا مگر بندگان خالص تو اسميان آنها والحق أقول فرمود به حق سوگام به حق میگويم لا منهم جهنم را از تو و پیربانه همه کی پرخواه میکند. قلما عليه من اجر و ما من من المتكلفين. بگو ای پیامبر، من شما هیچ پاداشی نمیطلبم و من ات متكلفی نیستم. این هو اینلا این بسیله تذکر برای همه ی است خوانیم. و لا تعلم بعد حین خبر انداز بعد از مدت میشنبیش.